شرح بزرگواری ها و شخصیت والای سعدی در این مقال مطرح نیست و کافی چند بیتی از سخنان وی در متح امیر انکیانو در این مجال ذکر شود که این شاهزاده مغول سپه سالار عراق و فارس و نماینده تامل اختیار هلاکوخون بود است و سعدی به او میگوید تو پند از پدر نشنیده ای. از عمو بشنو اهل ادب کنایه و معنی این سخن را که میگوید از عمو بشنو خوب میفهمند. جهان سالار عادل انکیانو سپهدار عراق و ترک و دیلم چون پند از پدر نشنوده باشد الا گر روشمندی بشنو از ام و در این بیباکی ها و نصیحت گفتنها بر آن باور است که سخن درشت اثری بهتر دارد و خطاب به شاه میگوید من اگر درشت نگویم تو نمیشندی، گوش کن دنیا نه ارزدان که پریشان کنی دلی، زینهار، بد مکن، نکی که نکرده است عاقلی باید که قهرلوت رو بود پادشاه را ورمه، مویثرش نشود حل مشکلی این بدان که همه رفتند تابوت تو را نساختند در رفتنی هستی نی کاروان برفت و تو خواهی بود ترتیب کرده اند تو را نیز گر من سخن سخن نگویم تو نشنوی بی جهد از آینه نبرد زنگ سیغلی شیف سعدی از این گونه پند و دعا و سنا گفتن نیست، خرسند نیست و اما به رسم مرسوم در ایران زمین و به اختزای زمان و خواسته دل فرمان روايان ناگزیر از شعر گفتن در باری پادشاهان است. این گره پیچیده را سعدی به انگشت ناز هنر باز می کند و در تاریخ ادبیات فارسی تردهی می نگارد که سابقه ندارد. و شاعری تقی و صوفی شیوه و شگردی رازناش به کار میبرد که همه اهل ادب را انگشت حیرت بر دهان میماند و گویا نخستین کسی که به راز شگفتگاری سعدی پی میبرد خواجه حافظ شیرازی است که اگر خود در این بار چیزی نمیگوید و گفتنی نیز نیست بلکه این هنر رمز ساده را از سعدی میگیرد و در کارگاه خیال گرآن پیش به هفت چشمه دیگر میبرد و به هفت رنگ می آراید آنسان که برقی از جره تا امروز باز نشده و تا قیامت شاید کسی نداند. در غزل زیر نظر خاز حافظ از کلمه فلان چیست؟ نسیم صبح سعادت بدان نشان که دانی گذر به کوی فلان کن، در آن زمان که تو دانی خیال تیغ تو با ما حدیث تشنب و آب است از خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی یکی نیست ترکی و تازی در این معامل حافظ حدیث اشکت بیان کن بدان زبان که تو دانی ما نمیدانیم غرض غرز کدام معامله است که در آن ترکی و تازی یه و معنی مقصود از کلام خاض حافظ را نمی ولیکن ولی که میدانیم این غزل و ایش شگرد و شیوه سخن گفتن و حتی وزن و گافیه آن را از سعدی گرفته است که سعدی می‌فرماید؟ سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد از سیر گرفتی به کشتونان که تو دانی سخن سعدی را میفهمیم. ولی ولیکن راز نهاده در آن نیست چندان آشکار نیست و شرح کوتاه کنایات آن نیست اشاره کردنیست به شرط آنکه به بدیده تحقیق در آن بنگریم و بدانیم خواب و خمار چشم زیباست ولی که اگر چشم کسی از خواب و خمار مستی باز نشود او گرفتار درد غفلت از مسئولیت است و این غزل از سرتاپا ابهام دارد یعنی محتمل و ضده این است هر بیت دارای دو معنی کاملا ضده هم است که هفت بیت من در اینجا زا جات داشت کردم ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی جهان و هرچه او هست و تو جانی به پای فیشتن آیند آشگان به کمندد که هرچه را تو بجیری زفیشتن برهانی تو پرده پیش گرفتی و از اشتیاق جمالت ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی بر آتش تو نشستیم و دود شوق بر آمد. تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانیم تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد چلید رمز غزل در این بیده تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد ریاضت من شب تا سهر نشسته ندانی من ای سبا راه رفتن به کوی دوست ندانم تو میروی به سلامت سلام ما برسانی سر کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد عسیر خیش گرفتی بکش که تو دانی غزل را اجر بخوام شر بدهم با چینایات آن زمان میبرد و این زمان کافی نیست ولی اشاره کردنی است اگرچه همه اهل فضل و عدب هستند ندانمت به حقیقت که در جهان به چمانی این واقعیت وقتی جمله معنی حقیقی خودش را داشته باشه یه معنی دیگری هم در توی داخل آموزوت داشته باشه حقیقت و چنای چنای به میاد به حقیقت که در جهان به کمانی واقعیتی این صحتی نمیداند و به چی شبیه است در جهان این جمله معنی حقیقی داره ولی معنی چنایش ما درباره کسانی که خیلی خوب هستند میگیم نمیدانم به چی میمانی و درباره چسانی که خیلی بد هستم میجیم نمیدانم به دعایت رفتی به عمویت رفتی ما چزی را چه را که نمیشنازیم جمله دقیقا دوتا معنی زد داره در مسرهای دوم معنی اول را چه خوب هستی را تایید میکنه جهان و هرچی در روح هست، صورتند و تو جمله هایی که به عقل راست نمیاد به است، جهان و هرچی در روح هست، صورت است، ولی جانی با حقیقت مطابقت نداره، ناچار می‌بریم به تن بیان و تشبیه در درواقع بلیغ در اینجا هست، یعنی تمام مردم دنیا مانند صورت هستند و تو مانند روح هستی، و چون، بقیه غزل به ما حشم میکند که این مطلب هم خودش چینایه است یعنی این مطلب واقعا مانند روح هستی نمیتواند حقیقتا صدق بکند در باری اون شخص به پای خیشتن آیند آشگان بکمندد که هر که را تو بگیری به خیشتن برهانی زیبای شلام سعدی این درد سند روزی در اینجا چند جلسه زلس هم صحبت میکنیم در همین زاز. که هر تو تو بجریذ قیشتم برهانی معمولا به معشوق میجان هر کس به چمند تو افتد از بین رفتنی است است ولی این میگه هر کس را تو به کشتنی است و در واقع طرفو صاحب زور و قدرت از که این را تعیین میکنه تو پرده پیش گرفتی و از اشتیاق جمال است پرده ها در افتاد رازهای نهانی تو پرده پیش گرفتی برای یک زن یعنی حجاب داری رازهای نهانی بیرون افتاد در معنی حقیقی یعنی همه آشق هستن و دیوانه شدن در حالی که در مورد پادشاهان به گول آقای نظامی میگه ای سپرف مردانجی اول تو به قوله دیوانجی در اون گوشه که خوش میدی چی را به چی را مقام بدن اونزا اول تو هست بخشی در اونجا آقای نو شانه گرفته سون زن رعنا شده چی سوپر میگید. از اشتیاق پرده پیش گرفتی در گوشه هستی و از اشتیاق جمالت جمال در لغت به معنی زیبایی است ولی در اصطلاح به معنی زیبایی نیست به معنی قیافه است بد باشه یا خوب اونجا که زید به عاشق دختر عموی خود میشه در لیلی و مزنون و دختر عمو را نمیدند پنامی برات به مجنون بین مجنون و لیلی نامه میبرد و میارد و میگه این کار را میکرد که مردم از او خوششون بیاد بعد برمیگرده میگه به خواننده کتاب تو نیست. گران کسالداری بر چهره همان جمال داری بسیار کسالهاست در مرد که از آن نتوان حکایتی کرد. از این زهته میگه تو پرده پیش شرفتی یعنی اون معنی محتمل و ضده هم وجود دارد تو در گوشه هستی از مردم گریزان هستی و در شوق جمال تو زپرده ها به در افتاد رازه های نهانی همه میدونن در اونجا چه کار میکنی تو؟ آگینو و شانه گرفته به دست مصحف و شمشیر بینداخته مصحف و شمشیر بینداخته جام و سراهی عوضش ساخته نشستی اونجا چه کار میکنی؟ بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد برآمد. آشق یعنی جمله ظاهری که شما در سعدی می و ما می خانیم. این است که بر آتش اشک تو نشستیم. اشک مانند آتش به جان ما افتاده و دود شوق اضافه استاریست دود به منی آه. یعنی از شوق آه می کشیم. تو ساعتی نش نشستی که آتشی بنشانی. نه آمده بنشینی آتش اشک ما را بنید. ولی در مورد آتش، آتش از آتش ظلم و دود مظلوم همه تو معلوم آتش ظلم یا آتش فتنه جرم روان آب در روی یافتن یعنی در سخن سرد پیان آتش هزود آفتن یعنی آتش فتنه این معنا در این بیت وجود داره بر آتش تو نشستیم و دود شوق بر آمد ایجاد کردی در این مملکت نشستیم بر این و دود شوق برای ما سوختیم در این اشتیاق که بیایی تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی تو غفلت داری از ما. نمیای این کار را بکنی. تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد از کردم ما معلم ادبیات هستیم. یهین است که چشم خمار چشم خواب ولی میگه تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد نه این چه خمار آلوده اصلا باز نمیشه چشمد اونقدر شراب خوردی و اونقدر ریاضت من شب تا سحر نشسته نران، تنها کلمه ای که کلید رمز این غزله به نظر من کلمه ریاضتی است و به عشق کسی نشستن غیر از ریاضت ریاضت در لغت به معنی تربیت اسب اصطلاح عالم عرفان هست. تشکر میکنم. من ای سبا ره رفتم به کوگ دوست ندانم، خیلی خوب میداند، یعنی موجه نمیدانم، بتونین کسی برم، تو میروی به سلامت، سلام من برسانی، سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد. این غزل پندنامه زیبا برای صاحب زور و قدرتی است که زندگی همه در دست اوست و معانی ظاهری کلام، برای همه روچن است و سعدی آن را آنسونان هنرمندانه برشته کشیده است که زیبایی و شیرینی کلام مجال تحکیف و اندیشه به شنونده نمیدهد. شرح همراه با استدلال و استنداز آن دیراز و ملالاور خواهد بود. البته قزل سعدی زیباست. اگر من بگویم که بسیاری از این ها را بسیاری از بزرگان در این 700 سال و متوجه نشدن خیلی راحت در شیراز من ازمی خدمتون. حافظ غزلی داره میگه که بر سر تربت ما چون گذری همت خواهد چه زیارتگه زیارت رندان زهان خواهد بود. تازه میخان و مینامونشون خواهد. غزلی ساخته علیه مشتب حافظ برای ریشند حافظ غزلی که حتی نام حافظ را نداره به نسخه ها اگر استادان محترم توجه بکنند بیت اول را در شرح چهار زلدی غزلیات نوشتند بیت اول اصلا معنی نداره. اون غزلی که علیه حافظ ساختن الان روی سنگ قبر حافظ نوشتن بر سر تربت من بیمی و مطرب منشین تا به ذلحت عکس کونم کنم برخزم در عالم اسلام کسی پیدا نمیکنه که بگه البته اونجا که می را حافظ به معنی ذکر خدا به کار می برد قرینه لفظی و عقلی داره در این غزل اینسون اینسون این چیزی وجود ندارد بدون می و مطرب بر سر قبر من وقتی میواد به بوی تو از لحت بیرون میام رقصکنان میام اولا حافظ این حرف مفت را نمیگه از رقصکنان به بوی چسی یا می از اونجا چسی هم از اونجا نمیتونه بیرون بیاد این حرف حرف حافظ نیست و مخصوصاً بیت آخر را من در اینجا نمیخوانم که پیرم تو شب یعنی علیه مشتب حافظ ساخته شده و روی سنجه از این زهدت بعید به نظرتون نرسد اگر چهار تا غزل را به هم بزنید در یک چیز شریش هستن دو تا ظلف مثل عقرب روی چون گمر چون سر زیبایی ها در حد احترام و محبت برای زنان تعریف نکرده و در همه این غزل هایی که برای ممدوح گفته و واقعا من نمی دانم این چه لذتی می برده از این که یادداشت کردم من، حیرت آور همینطور که آقای داشتو شبانی گفتم، واقعا من لذت بردم، فرمودم، من وقتی سعدی را میکنم میخوام می خوام چون این غزل هایی در مت پادشاهان گفته سیله را گرفته و از نظر شرعی خودش را نجات داده، برای اینکه زنان را این کار سابقه داره، برای اول بار وقتی شندر که ازکندر که مطلقا در پکر این مسائل نیست، پاته میشه در زنگها دستور میده پا. دختر پادشاه چین چنگی بزند در اونجا من متوجه شدم این نظامی هستن همسا جلسهی وجود نداشته یکیش دختر رو با قهرمانان شاهنامه مقایسه میکنه در واقع میخواد میگه که زن از همه چیز بالاتره برای اولین بار نظامی این کار را انجام میده و محرمانه می نووید قهرمانان شاهنامه که من در انضا یادداشت کردم در هر حال سعدی غزلیاتش قذلیاتش بعد از این یک سطحه دیگر به تاریخ ادبیات شما اضافه میشه با دکت میخواید می بینید در همه سیله خاص است و این حدود الله را هم میگد آه در تمام غزل های خودش. در هر حال دیکت بفرمایید. این ممکنه تا حالا خوندهم و پی کرده این قذلی است و میگوید، امشب به راستی شب ما روز روشن است بعد از خواندن غزل و تفکر در این اندیشه ممدوح او محبوب اوست متوجه میشیم در باقی با پادشاه مهمان بودند امشب به راستی شب ما روز روشن است عید سال دوست الا رغم دشمن است باد بهشت میگذرد یا نسیم باغ یا نکت دهان تو یا بوی لادن است هرگز نباشد از تن و جانت عزیزتر چشمم که در سر است و روانم که در تن است گردن نهم به خدمت و گوشت کنم به گل دقت بفرمایید این برای یک دختر نیست گردن نهم به خدمت و گوشت نهم به گل تا خاطرم معلق آن گوش و گردن است ای پادشاه، سایز درویش با مگیر ناچار خوشتی آنجا که خرمن است و بلافاصله سخن را برمیگرداند رنگ آشگانه میدهد و با شیرین زبانی به شکر و شیرین نظامی کنزیه ای شاره می کند گریختن نتواند زی دست شو. هر که میرود، رود متعلق به دامن است شیرین به در نمی رود از خانه بیرقیب داند شکر که دفع مجس باد بیزن است و در خاتمه اشاره می کند چهنه سرداران و سپه شاه بر سعدی حسد میبرند که او همسون شاهبازی بر دل سعدی نشسته و سعدی در سنگ این شاهباز حسیل شده و شکار اوست بازان شاه را حسد آوید به دین شکار کلمه شاه کاملا مشخصه من در اینجا تقسیم بندی کردم در بعضی ها کلمه شاه را بکاریم برد در بعضی خود سازو شاه یا عطا را در بعضی نام نمی برد ولی از صله قاهی و از این کاملا مشخصه باز یعنی من واقعا وقتی که شرح چهار جلدی حافظ را می نوشتم پیش می کردم حافظ در مشرب اصالت هنر قدم می زند سعدی در مشرب اصالت اندیشه و در پیش این مسائل نیست و بعد متوجه شدم که حافظ به نظر من بعد از اینکه البته من مقاله می نوشتم برای این کنگره تشکر می کنم از برگزار کنندگان این کنگره. به عنوان شخصیت سعدی در تخلصات غزلیاتش دفعه متوجه شدم عمری سعدی خانده این شعرهای آشگانه خواندین متوجه این کلمات نشده این. سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد حسید خیش گرفتیم یک کشت چنان که تو دانی با کسی از هیئت رئیسه محترم جلسه و حضار محترم مطالبی بسیار خلاصه درباره ممدوه ممدوح محبوب در قذرهای آشقانه سعدی از می کنم و قبل از اینکه مقاله را بخوانم یه توضیح مختصری خدمتون عرض بکنم که غزل های آشگانه سعدی آنسان که میگویند ساده هست ساده نیست غزل به این مقاله به استدلال ریاضی نوشته شده با شواهد غزل سعدی ممدوهان خودش را به صورت زنان مجسم کرده الان من نمیدانم این درویش صوفی تقیه متکلم چه لذتی می است از اینکه که چون این زیبایی را به وجود آورده و این ورقی بر تاریخ ادبیات شما اضافه خواهد کرد که قزلیات عاشقانی سعدی همهشون درباره وصف دختر و عشق زمینی نیست قصیده های سعدی حکایت از دعا و پند و مسلح تنیشی دارد و مدداهی و کذافگویی در آنها نیست و او خود بر آن است که مدیه سرائی شیوه درویشی نیست و به زبانی بسیار ساده به ممدوح خود میگوید مدیح شیوه درویش نیست تا گویم نسال بحر محیطی و ابرآزاری آزاری به بندگی سره تا ات بنه که بر به رفعت از سر گردون کلاه جبباری چو کار با لحد افتاد هر دو یکسانم بزرگتر ملک و کمترین بازاری هزار سال نگویم بقای عمر تو باد که این مبالغ دانم ز عقل نشماری سعدی در مته ترمان روایان و کارداران از خدا میترسد. و به خاطر نان آبرون نمی و مرگ را پیش طایفه از بیماری بهتر می داند. جماعتی شعرای دروغ شیرین را اگر به روز قیامت بود گرفتاری مرا که شکر و صنای تو گفتم همه عمر مگر خدای نگیرد به راستگفتاری، گفتاری. من آب روی نخواهم ز بحر نان دادن که پیش طایفی مرگ بهز بیماری